جن خودخوا، نوشته ریچارد داکینز فصل هشتم نبرد نسل ها. این فصل را با پرداختن به نخستین سوالی که در انتهای فصل قبل مطرح شد شروع می کنیم. آیا مادر باید به بعضی بچه ها بیشتر توجه کند یا باید همه را به یک چشم نگاه کند با اینکه ممکن است حوصله شما را سر ببرد ولی من باز هم تبقیه عادت را تکرار میکنم. واژه توجه کند و باید دارای بار اخلاقی خاصی نیست. من مادر را یک ماشین از پیش برنامه ریزی شده میدانم که تمام توانش را برای منتشر کردن نسخه هایی از ژن خود به کار میگیرد. چون من و شما انسان هستیم، معنی هدف آگاهانه داشتن را درک میکنیم. برای من استفاده استعاری از کلمه هدف کار را برای توضیح رفتار ماشین بقا یعنی بدن راحت می کند. در واقع معنی این که مادری به بچه بیشتر توجه کند چیست؟ به این معنی است که امکاناتی را که آن مادر در اختیار دارد به صورت غیریکسان بین پرزندانش تقسیم کند. امکاناتی که در دسترس یک مادر است و باید سر بچه هایش بشود شامل چیزهای مختلفی است. مسلما یکی از آنها غذاست آن هم به اضافه زحمتی که برای تهیه آن غذا کشیده می شود. همین برای مادر حزینه کمی ندارد. یک امکان دیگر که مادر باید حزینه کند تحمل خطر در راه حمایت از بچه ها در مقابل شکارگرهاست. جایی که مادر می تواند از خود مایه بگذارد یا نگذارد انرژی و زمانی که برای ساختن و نگهداری لانه، سیانت و نگهداری از آن و در بعضی گونه ها وقتی که صرف آموزش بچه‌ها می شود از منابع با ارزشی است که یک پدر یا مادر میتواند به انتخاب خود آن را به صورت برابر یا نابرابر بر زندان خود اختصاص دهد در نظر گرفتن یک ارز یا فرض کنید پول مشترک که بتوان با آن همه این امکاناتی را که پدر یا مادر سرمایه گذاری می کند. سنجید کار آسانی نیست درست به همان صورت که در جوامع انسانی از پول عنوان یک عرض قابل تبدیل به قضا زمین یا زمان کار استفاده می شود، ما به ارزی نیاز داریم که با آن امکاناتی را بسنجیم که یک ماشین بقا ممکن است برای زندگی فرد دیگری به بیجه بچهش گذاری کند. برای انرژی، کالری، مقیاس و معیار محاسبه خوبی است، و برخ بومشناسان عمری را صرف محاسبه هزینه انرژی ها در طبیعت کردند با این حال برای موردی که ما در نظر داریم رسانیست زیرا برای تبدیل به ارز و معیاری که اینجا واقعا اهمیت دارد، و آن معیار طلای تکامل، یعنی بقای ژن است، اعتبار لازم را ندارد. آرل تریورز در سال 1972 این مسئله را به شکل شسته ای با مفهوم سرمایه گذاری والدین قد حل کرد. گرچه از لابلای مطالب فشرده کتاب سر رونالد فیشر تحت عنوان هزینه والدین در سال 1930 احساس می این بزرگترین قرن بیستم تقریبا مقصودش همان است. سرمایه‌گذاری والدین PI عبارت هست از هر چیزی که پدر یا مادر صرف یک فرزند کنند تا احتمال ادامه دادن به زندگی و بنابراین تولید مثل موفقیت آمیز او را بیشتر کند و این در تقابل با توانایی والدین جهت سرمایهگذاری برای دیگر فرزندان است. حسن سرمایه گذاری والدین در نظریه تریورس در این است که واحد سنجش آن به واحد هایی که واقعا مورد نظرند بسیار نزدیک است وقتی بچه ای مقداری از شیر مادر خود را مصرف می کند مقدار شیر مصرف شده را نه با لیتر نه با کالری که با واحد خسرانی که به فرزندان دیگر آن مادر وارد می شود می سنجند. برای مثال اگر مادری دو بچی ایکس و اگرگ داشته باشد و ایکس به اندازه‌ی یک شیشه بزرگ شیر بنوشد بخش مهمی از پی که این شیر مظهر و نمود آن است با واحد احتمال افزایش مرگ اگرگ اندازه گرفته می‌شود زیرا اگرگ آن را نخورده است پی را با واحد کاهش امید به زندگی کودکان دیگر چه دنیا آمده چه نیامده اندازه می‌گیرم سرمایهگزاری والدین یک مقیاس آرمانی نیست زیرا بیش از حد روی اهمیت والدین تأکید کند تا روی روابط ژنی شکل مطلوب این است که از یک مقیاس سرمایهگزاری ایسارگری کلیتر استفاده کنیم وقتی فرد A احتمال زنده فرد B را زیاد کند میگوییم A روی B سرمایه گذاری کرده در حالی که می توانست آن سرمایه را صرف افراد دیگر از جمله خودش بکند و همه این مایه گذاشتن به نسبت میزان خویشاوندی است. بنابراین سرمایه ای که پدر یا مادر در صورت آرمانی و دلخواه برای هرکس فرزندان می گذارد باید با زیانی که به امید به زندگی دیگر فرزندان و همچنین خواهرزاده و برادرزاده ها خودش و غیر وارد می شود سنجیده شود البته این فقط یک اظهار نظر است و از خیلی جهات مقیاس تریورز عملا قابل استفاده است حالا هر فرد ماده بزرگسال را در نظر بگیریم در طول عمرش مقدار معینی پی آی در اختیار دارد یعنی همان مایه زندگی یا اون ارض یا پولی که گفتیم که می تواند آن را صرف فرزندان خود و دیگر بستگان و خودش اما برای راحتی فقط فرزندان را در نظر می گیریم بکند. این شامل همه خوردنی است که در سراسر عمر کاری او جمع وری یا آماده می شود. همه خطرهایی که او به آنها تن می دهد و همه انرژی و تلاشی است که در راه رفاه و آسایش بچه هایش صرف می کند. حالا یک ماده جوان که رو به بزرگسالی است چگونه باید امکانات خود را صرف کند پیروی از کدام سیاست سرمایهگذاری برای او عاقلانه است قبلا بنا به نظریه لاک دیدیم که او نباید امکانات خود را خیلی کم مایه بین تعداد زیادی بچه تقسیم کند با این روش او ژنهای زیادی را از دست می دهد. و کافی نوه نخواهد داشت، از طرفی نباید همه امکانات را به تعداد بسیار اندکی بچه، بچه های عزیز اختصاص دهد. شاید او در واقع چند نوه داشته باشد، اما رقیبان او که سرمایه خود را صرف تعداد مطلوبی بچه اند، در نهایت نوههای بیشتری خواهند داشت. تا اینجا در مورد سیاست تقسیم یک نواخت بود، حالا مایلیم بدانیم آیا برای یک مادر به است که بین فرزندانش فرق بگذارد؟ یعنی باید عزیز کردم داشته باشد؟ پاسخ این است که از نظر ژنی دلیلی ندارد مادر عزیز کرده داشته باشد. نسبت او با همه فرزندانش یک دوم است. بنابراین راهبرد برای او این است که به طور مساوی بین بیشترین تعدادی که بتواند بزرگ کند، سرمایه کند، تا خود آن بچه ها بچه دار اما همونطور که قبلا دیدیم، بعضی افراد از نظر خطرپذیری از دیگران بهترند. یک طوله ضعیف کمروشت درست به اندازه طوله های دیگر که با او از شکم مادر بیرون آمده اند. از ژن مادر خود دارد، ولی امید به زندگی او کمتر است. به عبارت دیگر بشابد گفت او نیاز دارد مادر بیش از بقیه برایش مایه بگذارد تا سرانجام در حد برادرهایش باشد بسته به شرایط شاید برای مادر این بسف باشد که با آن توله ضعیف قضا ندهد و سهم او از امکانات را به برادر و خواهرهایش اختصاص دهد شاید اصلا بهتر باشد که او را غذای خواهر و برادرها کند یا حتی خودشان را بخورد و به شیر تبدیلش کند خوکهای مادر گاهی بچههایشان را میبلعند اما من نمیدانم هنگام این عمل توجه دارند که طولههای ضعیف را انتخاب کنند تولههای ضعیف مورد خاصی را تشکیل می‌دهند. می‌توانیم یک پیشبینی کلی‌تر داشته باشیم درباره اینکه سن بچه تا چه حد مادر را در جهت سرمایهگذاری بیشتر تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر مادر مجبور باشد مستقیماً بین نجات دو تا از بچه هایش تصمیم بگیرد یعنی اگر به داده هر کدام که نرسد از دست می رود، باید آن را که بزرگتر است ترجیح دهد. به این دلیل که اگر او به جای برادر کوچک بمیرد مادر سرمایه بیشتری دارد که در زندگی صرف او کرده از دست می‌دهد. شاید به این صورت بهتر بشود بیان کرد که اگر مادر برادر کوچک را نجات دهد، باز باید از آن امکانات با ارزش خود خرج کند تا او را به سن برادر بزرگتر برساند. از سوی دیگر، اگر انتخابی که میکند مانند این نباشد که انتخاب فقط بین مرگ و زندگی است، شاید بهترین کار برای او این باشد که کوچکتر را ترجیح دهد. برای مثال، فرض کنید مشکل او این است که تک غذایی را به بچه کوچک بدهد یا به بزرگ احتمالا برادر بزرگ برای تهیه غذای خود بدون کمک توانایی بیشتری دارد بنابراین اگر غذا را به او ندهد او نمی‌میرد. از آن طرف آن بچه کوچک که کوچکتر از آن است که غذایی برای خود پیدا کند اگر مادر غذا را به بچه بزرگتر بدهد احتمال مردن بچه کوچکتر بیشتر است حتی اگر مادر ترجیح بدهد به جای برادر بزرگتر برادر کوچک بمیرد باز غذا را به آنکه کوچکتر است میدهد زیرا آنکه بزرگ است در هر صورت نخواهد مرد به همین دلیل مادر پستان دارن به بجای آنکه تا زمانی نامحدود به بچه شیر بدهند آنها را از شیر میگیرند. در زندگی هر کودک زمانی فرا می رسد که برای مادر به صرفه است جهت سرمایهگذاری گذاری را از روی او تغییر دهد و متوجه فرزندان آینده کند وقتی چنین لحظه‌ای برسد مادر مصمم می‌شود او را از شیر بگیرد اگر مادری به نحوی متوجه شود که این آخرین بچه اوست شاید بشود از او انتظار داشت که همه امکانات را در بقیه عمر به آن بچه اختصاص دهد و شاید تا زمان بلوغ شیرش دهد. با وجود این او باید سبک سنگین کند و ببیند آیا بهتر از روی نوه خواهرزاده و برادرزاده سرمایه گذاری کند چون گرچه نسبت اینها با اون نسب نسبت فرزند با اوست ولی شاید، توانایی آنها در استفاده از مایعی که او میگذارد بیش از دو برابر بهره باشد که هر یک از بچه های خودش می‌برند حالا وقت مناسب برای اشاره به پدیده معماگونه ای است که یأسگی نام گرفته است یأسگی یک باره به پایان رسیدن باروری یک انسان ماده در میان است. بعید است که چنین پدیده‌ای در میان اجداد وحشی ما معمول بوده باشد زیرا تعداد کمی از زنان با آن سن دو سال می‌رسیدند اما هنوز تفاوت بین این تغییر یک بار در زندگی یک زن و از دست دادن باروری به صورت تدریجی در مردان هاکی از این است که یأسگی یا از نظر ژنی چیز حساب شده ای است یعنی یک سازگاری است توضیحش نسبتا مشکل است در نگاه اول ممکن است انتظار داشته باشیم زنها تا جایی که توان دارند بچه بیاورند حتی اگر سال به سال که پیشتر می احتمال زندهماندن بچه هایشان کمتر شود، حتما باید به زحمتش بیار زد اما نباید فراموش کنیم که او با نوه ها هم نسبت دارد. گرچه این نسبت نسب آن است. به دلایل مختلف شاید در ارتباط با نظریه پیر که در شرایط طبیعی وقتی سن زنان بیشتر می شود به تدریج توان خود را در پرورش بچه از دست می دهم. به این ترتیب امید به زندگی فرزند یک مادر جوان بیشتر از امید به زندگی فرزند یک مادر مسن است این یعنی اگر زنی در یک روز همزمان دارای فرزند و نوه شود انتظار میرود آن نوه نسبت به آن بچه بیشتر رو عمر کند وقتی زنی در سنی باشد که برایش احتمال اینکه بچهش را به سن بلوغ برساند کمتر از نصف احتمال به بلوغ رسیدن نوهای باشد که هم همسن بچهش است ژن سرمایهگذاری برای نوه احتمالا موفقیتش از ژن گذاری برای بچه بیشتر است چنین ژنی به این صورت باقی میماند و ادامه مییابد در یکی از هر چهار نوه این ژن وجود دارد در حالی که جن رقیب آن در یکی از هر دو بچه وجود دارد. اما با امید به زندگی بیشتر در نوه آن ژن دیگر را از میدان به در می کند و جن ایسارگرد نسبت به نوه در خزانه ژنی فراگیر می شود. اگر زن مدام بچه بیاورد دیگر نمی برای نوه ها سرمایه کند. به این ترتیب بود که ژن باربری در تولید مثل در میان سالی بیشتر شد. زیرا این ژن در بدن نوههایی بود که زندگیشان مرهون ایسارگری مادر بزرگ بود. شاید این بدوانه توضیحی برای تکامل یا در زنان باشد. دلیل اینکه که چرا باروری در مردان به تدریج کم می شود و یک بار از بین نمی روید. احتمالا این است که مردان به اندازه زنان برای بچه ها سرمایه گذاری نمی کنند. مرد چون می از یک زن جوان صاحب بچه شود، برای او همیشه به صرفه است که روی بچه‌ی خودش سرمایه‌گذاری کند نه برای نوه تا اینجا در این پس و فصل قبل به همه چیز از دیدگاه والدین به بیش مادر نگاه کردیم پرسیدیم آیا باید از والدین انتظار داشت که عزیزکرده‌هایی داشته باشند و در کل بهترین روش سرمایه‌گذاری برای یک والد چیست اما شاید یک بچه طوری بتواند والدین را تحت تأثیر قرار دهد که روی او بیشتر از خواهر و برادرهایش سرمایهگذاری کنند حتی اگر والدین نخواهند بدچهای را بیشتر عزیز کرده باشند آیا ممکن است بعضی بچه ها کاری کنند که بیشتر مورد توجه قرار گیرند آیا این کار برای آنها به سرده است دقیقتر بگوییم آیا ژن خودخوا با توقع بیشتر از نظر شمار بر راضی رازی به سهم عادلانه خود پیشی میگیده. این موضوع در مقاله 1974 تریورز با عنوان تضاد والدین، فرزندان خیلی خوب تحلیل شده است. هر مادر با بچه هایش چه به دنیا آمده و چه نی آمده نسبت برابری دارد. همونطور که دیدین از نظر ژنی او نباید نور چشمی داشته باشد. اگر توجه خاصی به یکی نشان میدهد باید بر مبنای تفاوت آنها در امید به زندگی باشد که به سن و چیزهای دیگر بستگی دارد مادر مثل هر فرد دیگر نزدیکی نسبتی که با خود دارد دو برابر نزدیکی با هر یک از بچه هایش است یعنی در شرایطی که چیزهای دیگر یکسان باشد او باید از روی خودخواهی بیشتر امکاناتش را صرف خودش کند اما اینطور نیست و چیزهای دیگر یکسان نیستند. او با سرمایه گذاری و اندازه مناسب برای فرزندان می منفعت بیشتری به جنهای خود برساند. به این دلیل که بچه ها کوچکند و به کمک بیشتری نیاز دارند و بنابراین از هر واحد سرمایه استفادهی بهتری می کنند. جن سرمایه گذاری برای افراد ناتوانتر به جای سرمایه گذاری برای خود در خزانه ژنی بیشتر می شود. حتی اگر آن بهرورها فقط در تعداد کمی از جنها با آن فرد سحیم باشند. به این دلیل است که در حیوانات ایسارگری پدر و مادرانه دیده می شود و در واقع به این دلیل است که هر نوع ایسارگری نسبت به انتخاب خیشابند بروز می کند. حالا از دید یک بچه به موضوع نگاه کنید. او از نظر نسبت همان نزدیکی را با هر یک از خواهر برادرهایش دارد که مادرشان با آنها دارد. در همه این موارد خویشاوندی یک دوم است. بنابراین او میل دارد که مادرش بخشی از سرمایه خود را صرف خواهرها و برادرهایش کند. از نظر ژنی در او تمایل ایسارگری نسبت به آنها همان قدر است که در مادرش است. اما با این حال نسبت او به خودش دو برابر نسبتش با هر یک از خواهر و برادرهاست. و این باعث میشود او میل داشته باشد در شرایطی که نیروهای دیگر یکسان است مادر برای او بیش از بقیه مایه بگذارد. در این مورد چیزهای دیگر می تواند واقعا یکسان باشد اگر شما و برادرتان همسن و هر دو در شرایطی باشید که از شیر مادر به یک اندازه سود ببرید باید سعی کنید به بیش از سهم عادلانه خود چنگ بزنید و او باید به بیش از سهم عادلانه خود چنگ بزند آیا تا بهحال ای که وقتی مادر برای شیر دادن دراز میکشد بچههایی که از یک شکم به دنیا آمدهاند با جیغ و ویخ سعی میکنند اولین فردی باشند که وارد صحنه میشود یا پسر بچههایی که برای برداشتن آخرین تکه کیک به سر و کول هم میپرند به نظر میرسد ولع ناشی از خودخواهی ویژگی بسیاری از رفتارهای کودک باشد ولی داستان به اینجا ختم نمیشود اگر من بر سر یک تکه خوردنی با برادرم رقابت داشته باشم و او آنقدر از من کوچکتر باشد که بیش از من از آن قضا منفعت ببرد شاید به نفع جنهایم این باشد که بگذارم او بخورد شاید با چنین زمینه است که یک برادر بزرگتر آمادگی ایسارگری والدین مانندی دارد در هر مورد همانطور که دیدیم نسبت خویشاوندی یک دوم است و در هر دو مورد فرد کوچکتر از آن امکان فرد بزرگتر استفاده میکند اگر من ژنی برای دست کشیدن از آن خوردنی داشته باشم به احتمال 50 درصد برادر کوچکی من همان ژن را دارد اگر احتمال بودن آن ژن در بدن من دو برابر 100 درصد است شاید ضرورت نیاز من به آن کمتر از نصف او باشد در کل هر بچه باید به بیش از سهم خود از امکانات والدین چشم بدوزد اما آن هم حدی دارد تا چه حد تا آن حد که هزینه ای که روی دست برادرها و خواهرهای خود چه به دنیا آمده چه نیامده باشند میگذارد درست دو برابر سودی باشد که نصیب خودش میشود به مسئله زمان از شیر گرفتن بچه توجه کنید هر مادری طوری بچه شیرخوار خود را از شیر میگیرد که بتواند خود را برای بچه بعدی آماده کند از طرفی بچه فعلی هنوز میل دارد شیر بخورد چون شیر یک منبع غذایی راحت و بیدردسر است و بچه دوست ندارد دور شود و برای زندگی خود کار کند دقیقتر بگوییم او میخواهد سرانجام فاصله بگیرد و زندگی خود را تأمین کند اما باید وقتی باشد که جدا شدن از مادر و آزاد گذاشتن او برای به دنیا آوردن برادر و خواهرهای کوچک بیشتر به نفع ژنهایش باشد تا نگهداری مادر از او هرچه بچه بزرگتر باشد به نسبت سود کمتری از یک مقدار معین شیر حاصل میکند. به این دلیل که او بزرگتر است و یک شیشه شیر بخشی کوچک از نیاز او را برآورده میکند. کند به علاوه در صورت لزوم برای یافتن غذا تواناتر است به این تردید یک شیشه شیری را که می توان به یک بچه کوچک داد اگر برادر بزرگش بخورد. در واقع از امکانات والدین بیش از سهم عادلانه خود بهره گرفته است در مقایسه با وقتی که برادر کوچکش آن شیر را میخورد. به تدریجی که بچه بزرگتر می شود زمانی می رسد که مادر احساس می کند به نفعش است از شیر دادن به بچه دست بکشد و به جای آن به فکر بچه دیگری باشد. کمی بعد از آن زمانی می رسد که آن از شیر گرفتن به نفع جنهای خود آن بچه بزرگ نیست هست. این لحظه است که نفع یک شیشه شیر برای آن دیگر نسخه های جنش که احتمالا در بدن خواهر و برادرهایش است، بیش از جنهای بدن خودش باشد. این عدم سازگاری بین مادر و بچه مطلق نیست. یک چیز کمی؟ و در این مورد اختلاف نظر از بابت زمان بندی است. مادر میخواهد بچه فعلی را تا زمان شیر دهد که با سرمایه گذاری برای او سهم اش را به او داده باشد با در نظر گرفتن امید به زندگی و آنچه تاکنون از امکاناتش به او داده است. تا اینجا هیچ عدم توافقی نیست به همین ترتیب مادر و بچه هر دو قبول دارند. زمانی که دیگر هزینه ای این شیرخواری برای بچه آینده بیش از دو برابر سودی می شود که به بچه فعلی می رسد، بهتر از شیر قطع شود اما وقتی بین مادر و بچه اختلاف پیدا می شود که از نظر مادر بچه ای بیش از سهم خود استفاده می کند. ولی هنوز هزینه این کارو او برای بچه های دیگر کمتر از دو برابر سودی است که او میبرد و این یک مرحله میانی است. زمان از شیر گرفتن فقط یکی از موارد اختلاف بین مادر و بچه است. می آن را نزایی بین یک فرد و همه خواهر و برادرهای به دنیا نیامده آینده او در نظر گرفت که در آن مادر جانب آن به دنیا نیامده ها را گرفته است. رقابت بر امکانات بین رقیبان حاضر. بچهایی که با هم به دنیا میآیند یا با هم از تخم بیرون میآیند ممکن است مستقیم تر باشد. اینجا هم باز مادر طبق معمول نگران رعایت انصاف است. بسیاری از جوجه پرنده‌ها توسط والدین خود در لانه تغذیه میشوند. آنها همه با دهان باز داد و فریاد می کنند و مادر کرم یا یک خوردنی دیگر را در دهان یکی از آنها میاندازد. در مطلوب ترین حالت باید بلندی صدای هر جوجه متناسب با میزان گرسنگی او باشد. بنابراین اگر همیشه آن پدر یا مادر غذا را به بلندترین صدا بدهد، هر کس باید به سهم عادلانه خود برسد. چون وقتی یکی به اندازه کافی خورد، دیگر نباید خیلی بلند فریاد بکشد. این چیزی است که در بهترین شرایط ممکن وقتی کسی تقلب نکند باید رخ دهد. اما در پرتو مفهوم جن خودخواهمان، باید انتظار تقلب افراد را داشته باشیم این انتظار را داشته باشیم که در مورد میزان گرسنگی خود دروغ بگویم این روند ظاهرا بی معنا شدت میگیرد زیرا ممکن است همه آنها به دروغ بلند فریاد بکشند و آن سطح فریاد هنجار شود و در نتیجه دیگر دروغ به حساب نیاید اما نمیتواند از شدت خود بکازد زیرا هر فرد که اولین گام را در کاهش صدا بردارد فورا با تغذیه کمتر مجازات می شود و احتمالا بیشتر در معرض بی قرار می گیرد. البته به خاطر عوامل دیگری صدای جوجه پرنده ها و اندازه بلند نمی شود. مثلا صدای خیلی بلند ممکن است توجه شکارگرها را جلب کند و در ضمن انرژی زیادی را مصرف کند. گاهی همونطور که دیدیم از یک تعداد بچه که با هم به دنیا میآیند، آیند یکی نحیبتر از بقیه است خیلی ریزتر است نمیتواند مثل بقیه به خاطر غذا بجنگد و اغلب این ضعیف ها می میرن. ما دیدیم در شرایطی عملا برای مادر به صرف است که بگذاردن بچه بمیرد میتوانیم به طور حسی فرض را بر این بگذاریم که آن بچه ضعیف باید تا آخرین لحظه به تقلب برای زندگی ادامه دهد. اما این نظریه لزوما چنین چیزی را پیشبینی نمی کند وقتی یک طوله ضعیف به قدری ناتوان شود که با کاهش امید به زندگی سودی که از امکانات والدین می برد، کمتر از نصف سود بچه های دیگر از آن امکانات شود او باید با متانت و مشتاقانه مرگ را پذیرا شود او به این ترتیب بیشترین سود را نصیب جنهایش می کند یعنی ژنی که امر می کند بدن اگر از آنهایی که با هم زاده شده اید خیلی کوچکتر هستی تقلا نکن و بمیر در جنی ژنی از را پنجاه درصد احتمال دارد که با زندگی در بدن خواهد یا برادر خود نجات پیدا کند ولی احتمال زنده ماندنش در آن بدن نحیف در هر صورت بسیار کم است باید در مسیر زندگی یک طولی ضعیف یک نقطه برگشت ممنوع وجود داشته باشد قبل از رسیدن به با آن نقطه باید به تلاش خود ادامه دهد به م اینکه به آن نقطه رسید باید خود را رها کند و ترجیحان ضا دهد که خوراک طله همزاد هم یا پدر و مادرش شود. وقتی از نظریه لاک در مورد میزان جوجه گذاری صحبت می کردیم. من به این موضوع اشاره نکردم اما آنچه اکنون میآید یک راهبرد منطقی برای والدین است که در مورد میزان مطلوب جوجه گذاری خود در سال دچار بی تصمیمی است. آن پرنده، می تواند یک تخم بیش از آنچه چه واقعا حد مطلوب می تواند بگذارد. به این ترتیب اگر آن سال از نظر قضا بهتر از آنی باشد که انتظار می رود، یک بچه بیشتر گیرش آمده است. اگر چونین نباشد، نمی ضرری را که کرده کاهش دهد. باید حواسش باشد که بچه را برابر با بقیه تغذیه کند. مثلا از نظر اندازه، موازی باشد اگر یکی بیجان و در شرف مرگ است غیر از آن سرمایه‌گذاری اولیه از زرده تخم یا چیزی معادل آن دیگر بیهوده ها را صرف او نکنند از دیدگاه آن مادر شاید پدیده طوله ضعیف شنین توضیح داشته باشد میتواند نشان جلوگیری مادر از ضررهای احتمالی باشد این پدیده در بسیاری از پرندگان مشاهده شده است با استفاده از استعارهی که هر حیوان را ماشین بقایی در نظر می که هدفش حفظ جن هاست از تضاد بین والدین و فرزند تضاد نهست ها صحبت کنیم این یک مبارزه ظریف است بدون هیچ محدودیتی از دو طرف بچه از فرصتی برای کلک زدن استفاده می کند میکند که گرسته تر از آن است که واقعا هست شاید بچه تر از آن است که هست بیشتر از حد واقعی در معرض خطر است. او کوچکتر و ضعیفتر از آن است که از نظر جسمی برای پدر مادرش شاخوشانه بکشد، ولی هر سلاح روانشناسی را که در اختیار داشته باشد، دروغ، تقلب، فریب، سوءاستفاده به کار می گیرد. درست تا جایی که ضرری که به خویشاوندانش وارد می کند بیش از حد مجاز نسبت ژنیاش نباشد. از آن طرف والدین باید هواس خود را جمع کنند و مواظب تقلب و فریب باشند و گول نخورند به ظاهر کار ای است اگر پدر و مادر بدانند که احتمال دارد بچه در مورد گرسته بودن خودش دروغ بگوید ممکن است از روش تغذیه یکسان برای همه و نه بیشتر از آن استفاده کنند حتی اگر آن بچه داد و فریاد راه بیندازد مشکلی که در اینجاست این است که شاید آن بچه دروغ نگوید و اگر در نتیجه ی عدم تغذیه بمیرد آن پدر و مادر مقداری از ژنهای گرانبهای خود را از دست میدهند پرندگان در محیط طبیعی بعد از فقط چند ساعت گرسنگی ممکن است بمیرند این زهاوی شکل شیطانی خاصی از سو استفاده بچه بچهها را نشان داده است بچه طوری فریاد میزند که امدن توجه شکارگرها را به لانه جلب کند بچه میگوید رو با رو با منو بگیر تنها راه ساکت کردنش قضا دادن به اوست. به این ترتیب به غذای بیشتر از سهم عادلانه می میرسد و این را به بهای متوجه کردن خطر نسبت به خود به دست می آورد. اصلی که در این شیوه رفتار بیرحمانه پنهان است. همان است که یک هواپیما ربا به کار میگیرد، در حالی که خودش درون هواپیماست تهدید میکند که آن را متوجه خواهد کرد. مگر اینکه باجی به او بدهند من تردید دارم که به چنین عملی در تکامل برتری داده شود نه به این خاطر که بسیار بیرحمانه است بلکه از این جهت که اصلا شک دارم نفعی برای آن بچه سو استفادهکن داشته باشد اگر واقعا سر و یک شکارگر پیدا شود او خیلی چیزا را از دست میدهد این قضیه در مورد یک تک فرزند موردی که خود صحابی ملاحظه کرده روشن است مهم نیست مادرش قبلا چقدر برای او مایه گذاشته باشد او باید بیش از مادرش به زندگی خود اهمیت بدهد چون در مادر فقط نصف جنهای وجود دارد به علاوه حتی اگر آن تهدید کند، فقط یکی از یک دست بچه آسیب پذیر باشد که همه با هم در یک لانه اند باز این شیوه به صرفه نیست زیرا او با هر یک از خواهر و برادرهایی که با او در معرض خطرند از نظر ژنی پنجاه درصد مشترک است. و با خودش صد درصد تصور بنین است که این نظریه در صورتی درست در میآید که آن شکارگر به عادت فقط بزرگترین جوجه یک لانه را ببرد. آن وقت برای جوجه کوچکتر به صفه است که با این طریق پای شکارگر را به لانه بکشاند. زیرا خودش با این کار زیاد به خطر نمی‌افتد. این قضیه شبیه این است که به جایی منفشر کردن خودت هفتی را روی سر برادرت بگذارید.